شروع به لایحه گزارش خبردار نشینی الله اکبر شناشینوشه ولی تحقیق بحث واجبه نظریه تقدم اصول بعضیابرد و مناسبتی از که از وقت خارج شده و این بحث را تمامش کنیم عرض شد که نکته فنی که مطرح شده اینه که نسبت بین دو دلیل مثل دلیل استسها دا تنقاض یقین به شک و مثل آئله تجاوز دمشک و فشه انلم تجوز و فعلا جسته و فشک و بشه بین این دو تا دلیل نسبتشون چیه؟ از کلیمه این که مشهود در این تا و مشابه این در فرمت شده. به احل و سنت از قدیم تا شیعه نصفت و غالبا تخصیص یا تغییر گرفتن خیلی هم واضحه مثلا شما به حالت سابقه عمل کنید مگر در موارد تجاوز در نماز مثلا بنابرای رعی مشهور یا تجاوز مطلعا بنابرای رعی مرمو پس این یه نحل تخصیصه چیزید؟ حکم تخصیص لا تنوازه یعنی نوشه این عمل به حالت سابقه الا در موارد تجاوز اگر از محل تجاوز کردید دیگه به یقینه سابق عمل نکنیم اصلا شرک در رو کرده در حال سجد این اون متقاهم و متعارفی بوده که تا حالا در کتاب های اصولی و فقهی علماءی اسلام مفرح بوده هم شیعه قدیم و هم اهل سنت ارسل از, از زمان شیخ تقریبا به این بحث مطرح شد که این غیر از تخصیص باشه یا غیر از تقرید باشه همهشون بیرین شد که تخصیص رو در جایی فرض کنن که موضوع مثلا با موضوع و حکم یکی البته طایفه ایز از اون حکمشون رو فرض میکنن. مثل اینکه که علما علمان لازچکم فصاقل علمان تخصیص رو اینجوری برداشت کن و اما مثل اینجا که اینم شک و فیش اینم تجازه و این نوع تفسیره یه نوع به اصطلاح طبیعینه این تخصیص نیست البته حتی بعدها هم هستن بعضی که مرتایدن فرقی بین تخصیص و حکومت نیست ایتا در محل خودش فرقی کنون در واقع فرقی بین ایتا نیست این توضیح مطمئنش ها تو عوض سعال که میگه خیلی اجمالی متعرض بخش بخشید میشه در تخصیل مطالب در محل خودش به هر حال این یک نوع تصرف در موضوعه نه تص و این تصاربه در موضوع فایده اساسیش اینه که فقط این حکم برداشته نیمیشه هر جا عنوان شرکت برداشته میشه و لذا بلیان معتقلن مشغول این نیست با تجاوز در رکعات هم جاری کردن این که تو فکر توضیحشه یعنی هم بخش قاعد تجاوزی تو تنبیهات قاعد تجاوز که قاعد تجاوز در رکعات هم یا شک در افعال نماز معروف در افعال گرفتن دار این هم داره بعد هم در مرکوم اروه در اروه داره و هم مناسای در از این قائل تااروز تجاوز اون تحریز میشه اینجا بارد این بحث ها پس منابر این قائل تجاوز و تمام عدلهی که درش عنوان شک عخص شده مقدم میشه حالا کلام این در شک درکات این نه در جایی اینکه لا تنقضلی یقین به شر پس در حقیقت قاعده تجاوز فقط اون شک لا تنقضلی یقین به شر در این شر تصرف بکنه دیگه اینجا دیگه شک و کله بشه این دیگه شک نیست اکثر کردیم به ذهن ما اینطور میاد که اگر این اصطلاح جدید از زمان شیخ به بعد مطرح شده اردم با این اصطلاح در جواهر هم نیست گاهی در جواهر تعبیر به حاکم آمده مورد شخصی گذاشته چون در زمان اصول قدیم هم به راخر تخسیس و یک نوع شرح حساب بود تخسیس مثلا اکثر علما لطوفه این کردند الا سوفه فسره العلماء رو شرح حساب میکردن حاکم کلمه حاکم به کار برده شده ها اشتباه نشه در کتب قبل از شیخ لفظ حاکم به کار برده شده مراد این معنای اصطلاحی نیست این از زمان شیخ بهبهانی اینو اینه خود وا کن اشتباه نشه هست به کار برده شده در کتب فقهی اصولی ما حتی تو ذهنمی که در ب اهل سنت هم باشه الان دقیقا تو ذهنم نیست اما دیرن و اونجا به معنای اصطلاحی ما نیست این اشتباه نشه پس ما بر این به این جور گذاشتن که اگر شما شاره آمد تصرف کرد جاهل و مشارع مقنن تصرف کرد به مجرد تصرف او بدون تنزیل به مجرد تصرف او یک درس یک دلیلی خارج شد تو تعبیر دیروز بازدوستان میگدن وجدان حالا وجدان چیزی این رو استشه ورود گذاشتن اگر به مجرد تعهد خارج نشود احتیاج به یک تنزیل داشت استشه حکومت گذشته مثلا در همین پایه‌ی تجاوز دیروز توضیح و عرض کردم اگر گفت شک و که لیسه بشه شیع رو منوی موجود گرفتی اصلا شک نیست به مفاد لیسه تامه، شک نیست تا گفت شک نیست خواهی نخواهی خود به خود لاتن بازل یقینه به شک جاری نمیشه چون شک نیست هزن. به مجرد تعبده به این این شمیه چی میشه شک نیست لاعظر لعه هدن به مقالی نافه تشکیفی ما یقیی هرناس قاتلان از کل و ناینی، نایلی حالا انشاءالله می توی این بحثم باز اشاره می‌کنیم، تفسیرش رو بحث حجیات زن مرحوم های قدس الله نفسه حجیت اماره رو از باقی تطریم کشف می دونم. یعنی تطریم کشف نیست که مثلا کاشفیت اماره هفتاد درجه است سی درجه شکلی دیگه نیست شاره اون سی درجه ارخواه می کنیم حجیت اما تعبوده هست تعبادن یه این سی درصد نیز وقتی سی تا نشد اون هفتا تا میشه ست تا این اصطلاح تصمی میکرد خیلی مختصر و موقعی حقیقت تصمی میکرد حقیقت حجیت اماره به نظر مرمونداری اینه شاره میاد اون کاشف ناقص رو تام میشی میکنه چی جوری تام میشی میکنه الگاه شرق می کنه این شبیه هم میشه من در مقام استظهار از عدل لحظ کردن شما ما بکنیم ما تو مباحث اصولی این تو قانون کلا این یه قاعده اصلا این فرانتوز من باز بکنم ما در موارد قانونی یکی باید تصور اون بکنیم که در عالم اعتبار چی لحاظ شده دو لحظی که ما بگه چیه این دو تا رو شیل دقیق اصلا تو امور اعتباری این جزوه ارکان کاره چی اعتبار کردیم اون لحظه ما چه مقدار با این اعتبار همه این داره این ارکایی زوز مثلا در باب نکاح شما باید این در باب نکاح چی اعتبار میکنید؟ حتی خود شخصی اعتبار شخصی خود مثلا در بعضی ها دارید به علم سمن شما میگنید خانون رو در مقابل مهن میکیریم این یک نوع یا شبیه معاوضت مثلا این چ... شما چه همین تو باوزده؟ تو باوزده ها شما میگیم ما میاییم زوجیت اعتباری و اولغه زوجیت رو میخواییم در رعای اعتبار ایجاد بکنیم ایجاد اولغه زوجیت رو رعای اعتبار خب دقیق کس پس بحث خل و خروش نیست بحث معاوضه نیست شبه المعاوضه هم نیست چون شما یه زوجیت تکوین داری هر چیزی من کلش این ژنوزین اسن. ما می‌خوام این زوجیت رو به اعتبار بین دو نفر ایجاد بکنیم و لزوماً مثلا میگن بین برادر و خواهر، پسر و مادر، پدر و دختر، القه زوجیت ایجاد نمیشه این حرم علیकुम و یعنی اصلا این القه ایجاد نمیشه. شما نمی‌تونی که ایجاد بکنی تو لایثوار نمی‌تونی چطور. انا تجربه کردم که شکران استجابت الله اسب به مهارم زنا رو اجازه نمیدن، ازدواج اجازه نمیدن. ازدواج و مهارم رو اجازه نمیدن. اما زنا چرا؟ یعنی بیو چه معنا؟ یعنی اگه برادر خواهر رسان برن مثلا کلیسات ت قبول نمیکنه. اما اگر خودی نکنه پلیس نارضی فاکن مثلا عمل انجام بده، دولت راضی بشن چی اما خود الغی زوجیت رو اجازه نمیده. فقط خودی. خود الغی زوجیت چرا در بعض زمان کشورها والرئیسه بین دو تا مرد اجازه میدن اصطلاحی دارن که ممکن از خانواده تشکیل بشه بدون امید فرزند به اصطلاح یعنی در خانواده باید دو نفر که دارای هدف مشترکه بخواد امکان فرزند باشه یا نباشه مثلا مرگ و مردن میشه زن با زن هم میشه تشکیل خانواده الغی پس این در حقیقت اینی که قانون باید بیاد بگه این زوجیت در کجا اجازه میشه شما در حقیقت در ازدواج در عقد نکاح چی کار خوب دقت رو کنیم؟ زوجیت اگر اولغه زوجیت شد پس دیگه زن نمیتونه بگه که نفسی مثلا به یک میلیون تومن چون بعتاکه در لغت عرب برای اولغه زوجیت رو شده حتی اگر قصد اولغه زوجیت رو این که شما در زیاد میبینید که که برای نکاح میرن این باشه اون باشه این سرش اینه یک اون رو که شما قصد کردین و اعتبار کردین چیه؟ سوال دو لفظ شما باید سریع خوبده قصد کنید و حقیقی سریع یعنی چی؟ یعنی کنایه و مجاز و استعاره و اینها نباشه؟ دو حقیقی باشه معادل اونجا کنایه و مجاز نباشه یک لحظه رو بعد بیاریم دلالت سریع روشن بدون مجازیت بر همین معنای اعتبارش رو می‌خوایم مثلا اگه دلیل مثلا مثلا در انشاء صیغه نگاه متتع اشکال داره چون تمتع بازن احتمال داره بشه بدون اینکه القه زوجیتم باشه استجرید الله میگن لفظی رو باید بیاریم که سراحتا دلالت برای همین قلقه زوجیت بکنه اون لفظیت که سراحتا در لغت عربی دلالت اون میکنه زربش تو که چون خود زوجیت دیگه از ماده زوجیت هست گفته شده امکهتان در درجه یک شکایی شده گفته شده نکاح در صلو لغت عرب به معنای خود آموزجیتیه اگر من آموزجیتی باشی هم لازمش میشه لازمش میشه قلقه ز اینه است که خیلی بانیم بین پرانتر اون خیلی بانیم توی اعتبارات قانونی و حتی اعتبارات شخصی این نکته رو همیشه در ذهن نوارتون باشه چی رو قصد میکنی چی رو تصویر مخیر میکنی تو به آر اعتبار یکی دو اون لبز شما چجوری رابطه باز پیدا بکنه مثلا در باب نکاح سریعی ترین لبز و واقعی ترین لبز و بشق نفسی انکه تاکه درجه دوست مته تاکه درجه سه دیگه یه الفاظ خیلی بعیی نیست که بعتاکه نفسی به میلیون تومان که از این بعتا هم قصدشون اولده زوجیت باشه امکان داره قصد بکنه اما این واقع نمیشه یعنی در واقع اعتبارات این نفترده قصدتان یک محسود چیه اگر قصدش واقعا خیلی پروش نکاه نمیشه قصدش واقعا خیلی خروش نیست تعبیرا به افتاره کن بازم نکاه نمیشه بسنی تو چی شد هم باید به اصطلاح قصد واضح باشه هم باید نفس واضح باشه مرمومی نایمی در این پرانتز بسته این یک قاعده کلی بود این پرانتز بسته مرمومی نایمی در واقع حجیت امارات قاعد حجیت امارات واقعش تطمیم و کشم. حقیقتش تبیین میکشه یعنی اون کاشف ناقص رو شاره تکمیل میکنه در وی اه اعتبار چیکار میکنه اون شک رو برمی داره شک رو که برداشت میشه 100 درصد دیگه خیلی راحته اماره برای شما 100 درصد میگه حقیقت اماره در مقام اعتبار اینه اگر امری میخواید با حجیت اماره تفسیر نهایی خوب دقت بکنه اینا مثلا فلسفه ایده از اهل سنت نسبت داده شده که در مثل این جورجه جعل بدل یا جعل معده است یعنی کار به کاشفیتش دیگه نداره وقتی گفت ناغل این نقل کردیم این نشون حکم واقعی در حقه این آن یه تفسیر دیگه مرحوم ناغلی تفسیرش که این تطمیم کشف ما به دنبال کاشف هستیم این کاشف ناقصه شاره و مقرن او رو تمام میکنه و در کل تاثیر این مقام چی مقام تصور مقام لغز. میمونه مقام ابراز. مقام ابرازشیه لا لا عذر مم مواردی را فتشکیک کسی از مواردی ما هر نداره فتشکیک میکنه. پی ما یاریه. آنها سکوت خیلی واضحه. دی بی مبنای نویی رو شد؟ تکبر ایشان تثبیت کتش تثبیت کتش الغاء باقی غین شک الغاء شک الغاء شک الغاء شک لازم لا حرف تشدید کسی حق نداره تشدید بکنه کی مایر بی انسقاط و نا اگر ذرار مطلبی ناغم کند نگو من احتمال میدم اشتباه کرده 30 درصد احتمال نه این شک رو برمی داره خود بخاطر این شک رو برداشت تا شک رو برداشت میشه هزجم و لذای ایشان هم مبناش واضحه یعنی مبناش هچون کشفه تو ما قبول لده. میشه توضیح میدیم در محله خودش این مبنه ناقصه درست نیست هم مبنای ایشان تشکت از هم دقت بخونه نقطه فنی کلام ایشان دقیقا لسان اعتبار رو برده رو همین و لذای مثل مهمنانی دیگران از دلیل لاعظه لعهدن دل یا لیسه لعهدن من موال از تشکیک ما یهوی نسبتش بالا تنفاذ یقینه به شک ورود میدونه این سبش چرا؟ چون این میگه آتو از این شک نداریم، شک نکن شک نیست میشه سند برسه حالا شما میخوایید در مورد فنسکر مثلا خانمی که این قطعه ازم شد قبل الاختصال استصاب بقاق حرمت بکنید میگه استصاب باشه استصاب رو توی شک شکیه لا تنقضری یخی و شک این میگه لا شک شک نیست شوهرش اصلا میگه شک نیست شما حق نداری شک بکنید خب طبیعتا بعد از تعبد وجدان به خود به خود اصلا موضوع استاب برداشته میشه این لا عذره نمیاد تصرف بکنه لا تنقضری یادت میگه اون شک مراد من چیه خوب رفتار بکنید یه شک تصرف نمیکنه. لا لاعذره اصلا میگه شک نیست شک ن... نباید شک باشه شک رو برمی داره این سبه بروده اون وقت اینا میگه اون که میگه این شک و فیشه این لنسه جزه و ازا جزه هو فشک که لیسه بشه این حکومته این چون تفسیر می کنه لاتن خاطر به شک رو حالا شما ممکن است بگید اقایی من تقریب نستاطر مفصلی صورت خیلی بودم وقت خیلی گذشته توضیح دادم که در لغت عربی شاید کلمه شیگاه من موجود باشه نه عنوان برای یک عنوان انتظایی چیزی باشه این شک و کلیسه به شیء این عبارت رو از کلمه روزه ننمشن که بنده ارز دادم دو جور ممکن است تفسیر بکنی لیسه بشه این یعنی به موجود اصلا لیسه بشه شک نیست من شک نمیمیرم شک نیست او کار نداره به داتن بازید بشه اصلا بگه شک با سجاز محل نیست اصلا عربی مشکل نداره این احتمال اگر باشه با ورود میسازه از دیمان دوم که ظاهرم از ما با همین فهم نشان لبین بعید نباشه این اغربه ایل ذهن باشه شی عنوان انتظاری باشه یعنی چی؟ یعنی شی انتظار از عنوان شک باشه فشک که لیسه به شیع لیسه به شک خوده هم بکنید فشک که لیسه به شیع شیع کنایه و با عنوان شک باشه چون شیء میشه عنوان انتظایی از خیلی مثلا اندیشه شیع اون رئیس و شیع مثلا انسان میشه از هر چیزی باشه چون عنوان انتظایی نه جنیسون اجناس کار در بردازه عبادت آماده اون وقت میشه باشه اگر لیت به شکل باشه این معناش اینه که شارع میاد توی روایاتی که عنوان شک آماده داره تصرف میکنه اگر عنوانش لیسه به شک باشه تصرف و مفاد لیسه اما و حکومت میشه نزیجهش حکومت میشه حضورت همینطور هم فهمیدن یعنی تا اونجایی که من حس میکنم کلمات و اصولی احتمال، احتمالا شیعه موجودی اونی که زهنشون هست لیسه به شیعه لیسه به شکه یعنی شک نیست اگر لیسه به شک آمد تصرف لا تنقاضی یقینه به شکه این تصرف میشه در این اختلاف ظاهران چه؟ کدوم یکی باشه اختلاف ظاهرا نه این ما میگیم اینکه ظاهرش اینکه به شک یعنی. به شک نیست. بله، ظاهر شی انتزاع از شک باشه. فهم شک که لیس به من میفهمم. حالا چون اردریان بعضی اون عقد من نمیفهمم اون که ارتقاض فقها و اصولین ما بوده لیس به شک. شی رو کنایه از شک گرفتن. این نمیشکو، پیش این لام تجذب و فیدار جزت او، که لیت بشه این، به موجود احتمال داره، اما به دا نظرم بیشتر مناز به همون لیت به شک کنه. این مبانی که تا حالا در اینجا مطرح شده، پس عرض شد سه مبنای اساسی در تفسیر این دو دلیل وجود داره. یکی که مشهوره قدم آسمانی که کشیعه در کلمات اهل سنت هم هست، اون تفسیره. از معاصرین هم برده قائلند. دوم حکومتی که تقریبا بیشتر قائلن بین از معاصرین بعد شیخ بیشتر سوم سبون وروده که الان قائلی به ذهنم نمیاد این لحظه اما دیدم احتمالی در کلماتشون اما الان تو ذهنم حضور که فلان آقا قائل به ورود باشه در ذهنم نیست اونی که به ذهن ما میرسه من چون یک توضیحی خدمتون عرض کردم اون توضیح رو پراموش نفرمایید این توضیح یک مقدماتی باش یک وقتی که انسان از محلی تجاوز کرد اصلا در طهزه شک میکنه در رکوع سه تا حالت داره همین شخص یکی حالت سجده کرد آن شک میکنه یکی حالت وسطی که رکوع بوده که در شک داره یکی حالت یقین قبل از شک که قیام بود در حالت قیام رکوع نبود من این توضیحش رو این سه تا حالت. نقیض دوگو عرض شد که مقنن میتونه نسبت به وظیفه عملی انسان یکی از این سه حالت رو قرار بده. امکان داریم یعنی در مقام تس... در مقام جن هیچ مشکل نداره. ممکنه همو حالت سوجشه شما نگاه بکنه. و فرض ارزش یه چیز گفتیم چون تطابق بین مقام و اثبات چی تعبیر بکنه؟ اگر سجود شما نگاته میگه امزه بی سلاسه اگر گفت امزه بی سلاسه فقط سجود شما نگاته ممکن است رکوع شما رو اون مشکوک نگاه بکنه اینجا چی تعبیر میکنه میگه بلاقد رکع کرد این کی گفت بلاقد کرد رکوع در نظر گرفته ممکنه حال قبل از رکوع نگاه بکنه که قیام بوده و شما رکوع انجام ندید اون چی میشه اسمش ها؟ میگه مثلا تو میگه قرائت نکردی که پس الان برگرد دو مرتبه رکو انجام بدی یا نمازت باسه که این تعبیر رو هم گفتی در روایت داره خوندید روایتشه امام میفرماید اگر مثلا در حال وضو شک که در بعض افعال سابق کردی مثلا در حال مسح پای راست شک میکنه دست راست شسته یا نشسته امام فرمان یوید و علیها و علا جمیع قسلات المشروفه یوید و علیها این که گفت یوید و علیها یعنی به حالت قبل از خسریت میگاه کرده یعنی استثاب ملازق پس خوب روشن شد که در مثل این حالا سه حالت در مقام اعتبار هر سه حالت میتونه اعتبار بکنه تا من هر کدام آثار خاص خودشو داره این هم مطلب دوم بود که گذرست مطلب ثوم ارز کردیم الان هم توضیح داده شد تو مقام احتباط هم باید لحاظ بکنه هم لبزی در مقام ابراز مناسب با اون لحاظ بیاره مطلب چهارم اگر لبزی مناسب با اون لحاظ برد خوب دقت بکنه این مطلب خیلی مطلب ذریفیه خیلی کاربر در اصول داره اما به های دیگه شاید اصطاهم هم ذهن لوازمش رو حساب نکنید اون خیلی نکتهی ظریفی. اگر یک اعتباری کرد لوازمش رو دیگه حساب نکنید مثلا در مثال ما مگه در حال سجده شکل در رکوع کردن امام گفتی میتونه حالت سجده شما رو لحاظ بکنید چی بگه بگه امزه پی سلاته گفتیم یه سوال. حالا که گفت امزه پی سلاته لازمش اینه که بگه روکو انجام داری ویده چه تو میشه بدون روکو امزفی سلاته؟ او تصور بفرمه اگر گفت امزفی سلاته این لازمش اینه که یعنی روکو انجام داری روشتون میگه امزفی سلاته مثل این که فرص بنده الان میام رو به شما هستن خب طبعا رو به شما باشن پاشن به تخت این اینطور میشه دیگه؟ اگر من گفتم رو به جمعیت صحبت کردم لازمه این مطلبی که باشت من به تخته بود یا اگر گفتم سخت فوق من بود یعنی اگر فوقیت رو عوردم خواهی نخواهی تحتییت زمین هم باید ملاحظه بشه اگر سخت بالای سرم بود یک چیزی هم زیر پای منه یعنی به عبارت دیگر اگر سخت بالای سرم هم بود من خود من هم تحت سخت هم. اون فوقیت این تحتییت هم دارد درست شد؟ اینا لازمه شه آیا چون مقام اعتبارات قانونی این لازمه مراعات میشه نه این سواله بوده اون بحث معروف زب تحلیل قانونیش همینه هه. اون بحث معروف فرسنده که مسئله مقدمه واجب تحلیل قانونیش همینه ببینید شما برای بزن... تون باز باید کار رو کنم ببینید وقتی شما به شما بگه نان به هم. بکنه. خب نان خریدن طبیعی که آدم باید خواب نباشه نماز نخونه اگه نماز نخونه کسی نان بخره. پس بین نان خریدن و نماز نخوندن تلازمه یا بین نماز خوندن و نان خریدن تا آنوده. این که واضحه دیگه این به این بود تا گفت نان بخر نماز نخون مثل هم مثال اینجا از, از این مثال هر کدوم یک نقطه فنی داره لیکن یک باب واسعیه این ارفیش اینطوره من رو به شما هستم یعنی پشتم به است. تلاظم رو ارف می فهمه. آیا آیا توی اعتبارت هم همینطوره اون سر بست زد اینه میگه خب آدمی که نماز میخونه که اون من نام داخره. آدمی که نامیره نماز میخونه که واضح دیگه. البته این رو بردن توی بحث فلسفی که وجود احد از دین علت برای عدم از داخل عدم ماه عدم از دین مالا کار بود نداری اما ما الان یک بحث اروپی داریم یک بحث قانونی داریم اینو آمدن گفتن نان خریدن با نماز خوندن تا آنود داره کسی که نماز میخونه دیگه نان نمیخوره کسی که نان میخره با نماز نخونه نخواب اون بحث رو حوشن بشه میگه وقتی گفت نان بخر یعنی نماز نخون، خیلی واضحه. بگیر حالا آیایی یعنی که نو چی میگن یعنی این تعاند هست خوب دقت بکنید، قبول داریم تعاند رو پس نقطه بحث کجاست قبول داریم کسی که نان بخواد بخر نماز نباید بکنیم این واضحه که جوی بحث نداره نقطه بحث این است که از نان بخری یک اعتبار قانونی ها خود قضو کنه که دارای آثار قانونی باشه رولات و سلبیه ها تا آمد واقعی جای خودشه جای بحث نزده امکان نداره نان بخره و نماز بخونه که مگر نماز ماخرد در حال راه را رفته که ما درش اشکال داریم در سفر و الله امکان نداره که مثلا به خوابه یا مثلا مشروع نرسن کتاب بشه الانم باقید دارد مگر با کمپیسی که اینوز و الا ایجا تعانوت اینو میگن تعانوت قبوله گفت قد کنی تعانوت جای بحثش نیست این نمن کلان تولد یک اعتبار قانونی گفت قد کنید یعنی از نان بخر یک لا سله بیاد که آثار لاتو سلبه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اگر نماز خوندی نمازتون باطله این محل کلامه. موشن بکنه نقطه آیا از نام بخر یک اعتبار قانونی در میان غیر از تانون واقعی اون هم واقعی است که خب طبیعتم در وقتی نان خریدن نماز نمی یا اگر نمازتون نماز خون نماز خوندنشون نان نمی خونه اون تانون واقعی است این نمل این نمل آیا این بر اساس تحاند واقعی در درجه است که این جلب بکنه به نمی معانه که معنای نان بخر این بشه توش لا توسله لا توسله قانونی نه لا توسلی بسا نه توی باشه نه این درافت نقطه هست نان به هر توش لاس و سلی هست که نفیه یعنی نان خریدن با نماز جمع نمیشه آیا لاس و سلی هم توش هست نماز نفون نه نه توش باشه ما این رو کراران از کردیم یک مشکلی که در اعتبارات قانونی هست همینجاست میگن اعتبارات قانونی به مقدار ابرازه به لوازمش کار نداریم یعنی لوازمش جای خودش تو به های واقع به تو اعتبار نمیاد خوب دهن بکنید ظرافت نور هدف بحث روشن شد بله نان خریدن با نماز خوندن جمع نمیشه اما این منشه نمیشه تو اعتبار بیاد اگر گفت امزفی سلاته خب خای نخواهی معنیش که انجام دادی تو بیشه امزفی سلاته اما این معنیش این نیست که گفته باشه تو روکو رو انجام دادی فی سلاته ولی تو به اعتبار معناش به اصطلاح بدون رکوع نمیشه اما اعتبار نکرده اصیان رکوع رو و ایجاد رکوع رو و تحقق رکوع رو اعتبار نکرده خوب شد پس نورتی چار و این است که اگر اعتبار آمد به همون مقدار خودشه به لوازمش کار نداده دعیان نشده در نه. نه. ممکن است اساساً یک نکته دیگه در کار باشه. اعتبار تا قبول اعتبار تابع شبیه شماست. اعتبار تابع ابراز نیست، اما تا ابراز نشه اعتباری نمی‌شه. این مشکل کاریه. چون وعای اعتبار خارج نیست، یه وا خاص خودش. که وجود اعتبار پیدا مون تا ابراز بشه. مادام که افق نفسی در از ارزش ناده ولیزا به مقدار و به همون حد ابراز اعتبار, اعتبار واقعیت ده دائما نمید جز اصولی که عرض کردیم و اون مقدار ابراز اعتبار وجود پیدا میکنه نه در حد دو او سه از افق اعتبار این زلازه که ابراز شده خب بهش ابراز بایا ما قبض شده اعتباری چه تنجام باشه ترسل نه دیگه لازمه چیست اون حرف اون مقدار که ابراز کرده فقط موزیه به سلاسه هیچ نگفته شما رو که انجام دهیم اصلا ساکته اگر اعتبار هم کرده باشه چون ابراز نکرده اینا سرش همینه تمام اختلاف ما با آیون همینه میگه حالا که بخو امزفی سلاسه یعنی اصلاف ها عدم رو کنه می همین که گفت روشن شد اختلاف ما با واج در کجا است این که بر بزرگان و اینا میگن همین که گفت امزفی صلات یعنی استفاء عدم رکوعی چون گفت رکوع واجب در ما تمام ذراف این دستی که من عرض میکنم کنم تعبدی که نیست فکر بکنید ما هر اینه که اثر ایشون استصحاب رو لحاظ نکرده اونا میگن چون گفت امزفی سلاتت پس این لاتنگوزر یقینه به شهر که لحاظ کرده چون میگن شاره نگفت لاتنگوزر یقینه به شهر خوب دقیقا زرافت بحث روشنی اصلا نکته بحث کجاست خیلی این بحث ها لطیف ما بیگیم صورت هم در کلمات از و امرده و خوال و ضریبه این انصافه که بیگم از برکان شیخ قبل سالان هسته و شیخم به این درجه برن نبرموزه این ذرافت بحث اینه اون زمینه بر گفت امزفی سلاتک امزفی سلاتک خب نمیشه بگه بگیم استثابه ازم رو بکن نگاه نکرده یعنی الگاه کرده خب از این هم هم گفته لا تنقضیل بشن اینا آمدن گفتن حالا که امزفی سلاتک و لا تنقضیل یقینه بشن یعنی در اینجا من رو لحاظ نکردم. من در اینجا اقتصاب رو لحاظ نک. نت... چرا کنم بودیده توی سلاسه هر کما چیه هر ما اینه که در اعتباریات افق واقع رو نبینی افق ادراز اعت... رو ببینی اون دائره ابر... دو تا کلبه آقایدان آمدن افق واقع رو دیدن ولو واقع تو لحاظ اعتبار ولو به مقدار لا تنوازیدیت نوشن ما حرف که هر وقت اعتبار آمد به همون مقدار ابراز نگاه میکنه این نیامد بگه لا یقین به شک جاری نمیشه اونا میگن نه چون طبیعتا همینطور وقتی روشن شد، سه اختلاف این تمام کلمه دیگه از حال ما میگه وقتی گفت امزفی سلاته یعنی لا تنقذیل یقینه به شک میاد. اگر گفت بلا قبرکت یعنی لا این سر کار اینجاست دقیق میکنه اینا میان نسبت رو اینجوری حساب میکنن ما هر طور اینه که نه اگر گفت امزه پی سلاسه همین رو لحاظ کرده بقیه رو لحاظ ده. اصلا عدم رو نه لحاظ رو لحاظه بله. ها یه چیز خاصی در جد. حالا بین ورود تخصصه این از کشفش کاشکش میکنید کاشکش اینه کاشکش اینه که یک سری اوغلاسی در در در اعتباراتی که جعل میکنن فقط همون دایره جعل نگاه میکنه و تا لحاظ نشه جعل اصلا اعتبار نمیشه میبینید عدم اللهاظ نه لحاظ و عدم همین که آمد گفت بلا قدرت خوب دقت بکنید تا گفت بلا قدرت سه تا حالت بود دیگه سجده رکوع قیام تا گفت بلا قدرت کرده این من دیگه قیام نگاه نکردم دیگه قیام نگاه نکردم اگر گفت لاتفن قضل یقینه بشت اینه قیام نگاه کردم ها به نظر ما اصلا در اینجور جایی شیدی شبیه تخصص حالا به یک معنی عرض میکنم یا اگر تخصصم نگویم چون مرا اعتبار تو کار آمده اشکال آن اعتبار بودنشه حاله یه توضیح مختصی و دیگه وقت ما روز گذاشتی فردا برده کلام رو از برده, برده مطلب نهبوی سوام میکنم بگیر ما اسمش کشی روح ورود یکی از ورود بالاتر اسمشی بایی وقت اصلاح خود بنده روح ورود یعنی اصلا اون لحاظ نشده نه لحاظ و لعظم یعنی چون سه تا حال تصویر اون روشن شد سجده رکوع قیام اگر قیام رو لحاظ کرد استثاره. اگر رکوع رو لحاظ کرد قاعده فرامه تجاوزه اگر خود سجر رو لحاظ کرد اصل غیر محرزه فقط جریع عملیس امز بی سلافه باید جریع عملیس هیچ احراز بیش نداره اگر قیام دید احراز داره استحساب اتو محرزه رکوع دید قاعده تجاوزه احرازه بازم احرازه بلا قدرکه هست احراز کرد اما اگر امز فی سلافه فقط جریع عمالیس. این شصت غیر مخرج این زاویه تر خیلی برای شناخت اصل مخرج و غیر مخرج ما میگیم در روایت آمده بلاغذر کرد این چی میگه بلاغذر کرد یعنی چی یعنی من اصلا قیام نگاه نکردم خوب دقت یک کلمه نگاه نکردم که اصلا جای اعتبار نیست اصلا جای لا طرز یقین به نیست خوب دقت رو کلمه شک ما کار نکردید رو اصل لحاظ کار کردید چون لازفنگوز یقینه به شک رو دقت میکنید میاد حالت صابقه رو لحاظ میکنه اینجا میگه بلاغذرکت با اصلا لحاظ نکردن شما نه این دیدید این نمش شک و فیشه این لم نسبت این شک با اون شک چیه اصلا اون حالت رو لحاظ نکرده در لازفنگوز یقینه به شک حالت قیام لحاظ کرده در حالت تجاوز حالت وکوع لحاظ کرده و اگر لحاظ نکرد اصلا ذاتاً استصحاب جادینی چون خب دقت بکنید حالا بالا شاید مراد از این که گفتن وجدان آن جاری میشه برام بگیم ورود همین بوده ما اینو بالاتر از ورود میدونیم اون وقت این نکته اینه که اگر بگیم تخصص به این معنا بگیم تخصص این خروج موضوعی بگیم وجود هر شی در ویای مناسب خودشی در ویایی که بار تا لحاظ نکنه وجود نداره این میشه تخصص یک اگر بگیم نه به هر حال یک تعبدی اینجا آمده چون گفت بلا قدره کرد اگر این نکته رو نظر بگیریم به لحاظ تعبد حالت روکو اصلا لحاظ حالت قیام لحاظ نکرده بگی نوبت لفظ و محفظه میرسه اصلا لحاظ حالت سابقه نشده حالت قیام لحاظ نشد کلک ندل ملازمه نه لحاظ عدم شده اصلا لحاظ نشده و اگر لحاظ نشه استسخواب خواهی نخواهید که امکان جریان نداره. در نتیجه اینه که از ورود هم بالاتر میشه اصلا در اینجور شرح بین ادله به اصلاح و نتیجهش این میشه که در مثل لاؤزل عهد من مبال ناعتر برپرزه که اینه قبول بکنید اینجا ورود خوبه این یک شرح لفیدی داره این موزیم تو بحثه قاید تجاوز چون همه هم امحاست قاید تجاوز که ارز نکردن همه از لطفاق داره در محل خودش اونجا ارز بی در مثل امارات ادلی امارات با اصول ورود خوبه اما در مثل خود اصول به از آمه عبز هرود جواب ندید به احتراج همون تجاوز دیگه این بحثی به همه داره اکتماق خودش ر آخر...